سوره مزمل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل للإلا للانصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه الله با رحمت است ای تو که جامعه به خود پیچیده ای بیشتر شب را به عبادت بگذران و کمتر بخوان. یا نیمی از شب را یا اندکی از نیمه کم کن یا بران اضافه کن و قرآن را با دقت و دراغیت بخوان، آماده باش زیرا به تو کلام سنگینی را القا خواهیم کرد حقیقتن در شب دارای آثار پابرجاتر و گفتار تر است زیرا در روز کارهای بسیاری خواهی داشت نام پروردگار بزرگت را یاد کن دل از همه برکن و فقط به او بپیوند آن پروردگار مشرق و مغرب که جز او هیچ معبودی نیست پس فقط او را وکیل و کارساز خود کن لله لااله هو الله لا, اله الا الله لا اله الا و بر آنچه میگویند صبر داشته باش و با هجرتی زیبا از آنان دوری گذین تکذیب کنندگان ناز پرورده و صاحب نعمت را به من واگذار، و کمی مولتشان تا بیشتر ماهیتشان را نشان دهند زیرا زنجیرها و آتش جهنم نزد ماست با غذاهای گلوگیر و عذابی دردناک روزی که زمین و کوه به شدت به لرزه درآیند، کوه ها به تپه‌های از ریگ نرم تبدیل شدند ما به سوی شما پیامبری فرستادیم تا گواه شما باشد چنانکه که به سوی فرعون نیز پیامبری فرستادیم فرعون با پیامبر مخالفت کرد و ما نیز او را گرفتار عذاب سختی کردی. اگر منکر حق شدید چگونه در آن روز سختی که حتی کودکان را پیر می‌گرداند در امان خواهید بود کان وعده مفعولا این ها فمن ربه روزی که آسمان شکایت شود و وعده الهی تحقق یابد تمام اینها پند و تذکر است برای کسانی که به دنبال سعادت و آرامش راهی به سوی پروردگارشان می‌جویند پروردگارت می‌داند که تو و گروهی که با تو همراه شدهاند نزدیک به دو سب شب یا نیم آن و یا سلس آن را به عبادت برمیخیزید. این خداست که اندازه شب و روز را معین می کند و می که شما هرگز از این محاسبات دقیق سردر نخواهید آورد. خداوند توبه شما را پذیرفت ما من پس هر مقدار که برایتان میسر است از قرآن بخوانید خدا خوب میداند چه کسانی از شما بیمار خواهند شد و چه کسانی برای کسب روزی به سفر خواهند رفت و چه کسانی در راه خدا به جنگ روانه می شود هر مقدار که برایتان مویسر است از قرآن بخوانید و نماز به دارید و زکات پرداخت نمایید و به خدا قرض الحسنه دهید و بدانید هر خیری پیشاپیش برای خود بفرستید آن را به بهترین وجه و بزرگترین پاداش نزد خدا خواهید یافت از خداوند بزرگ طلب مغفرت کنید زیرا خداوند آمور زنده و با است و ما تقدمو لأنفسكم من خير تجدوه عند الله و خیرا و اعظم اجرا و الله ان الله غفور رحيم.